بعد از صرف صبحانه ما را به دهکده کوچکی بردند که کارگران به کمک جوانان هیتلری در جلوی آن خندق‌هایی برای تانک‌های دشمن کنده بودند که مانند سنگرها نسبتاً عمیق و وسیع بود. ما بچه ها به خاطر سن و سالمان اجازه نداشتیم با بیل و کلن کار کنیم اما می در حمل و نقل وسایل کارگران و سایر کارهای سرپایی به آنها کمک کنیم. مناجرت مسئول را شدیم که از بیشوفسبورگ تیراهن، الوار و مواد غذایی به دهگده می برد. وقتی هوا خوب بود، کارمان حسابی کیف داشت. افسران اسعا و دیگر رهبران حزب معمولاً به دیدن ما می آمدند. آنها نه برای کمک به ما بلکه صرفاً برای اینکه با بیل و کلنگ جلوی خبرنگاران و دوربین های اکاسی ظاهر شوند به آنجا می آمدند. یکی از آنها رئیس تشکیلات حزب کوخ از اهالی پروس شرقی، که خوشبختانه نسبتی با نویسنده ندارد، بعد از ظهر یک روز آفتابی به دهکده آمد. ابتدا نطق مفصلی برای ما ایراد کرد و بعد آستینهایش را بالا زد و داخل یکی از خندقهای ضد تانک پرید. دستور داد کلنگی به دستش بدهند و در حالی که به دقت مواظب بود پوتینهای قهوهی بر خاکی نشود، کمی خاک را زیر رو, رو کرد. گرچه زحمت زیادی به خودش نداده بود ولی صورت سرخ و سفیدش یک پارچه به رنگ مس درآمده بود. او یک مشت عکاس و خبرنگار دنبال خودش راه انداخته بود که از این صحنه هیجان انگیز فیلم برداری کنند. که کردند؟ وقتی خاطر جمع شد که به اندازه کافی جلوی یک دوجین دوربین ظاهر شده و هیچ جنبه‌ای از شخصیت بیمانندش نادیده نمانده، از خندق بیرون آمد. شکم برآمده‌اش بود. که انگار با دم آهنگری به آن دمیده باشند با صدای بلند به یکی از آجودانهایش گفت های ویتامین منو بیارید مردی در آنیفرم اس‌آ با قوطی کوچکی در دست جلو دوید و رئیس تشکیلات حزب چند قرص از آن را برداشت و بالا انداخت چند نفر از آجودانهایش دورش را گرفتند لباسش را برست کشیدند و های تمیزش را برخ انداختند. هنگامی که یکی از آنها با چاپلوسی تمام او را سمبول بارز یک مرد آلمانی نامید، سربازی که در محاوته بود زد زیر خنده. او به عنوان رابط بین مرکز فرماندهی شهر و گروه کارگری ما انجام وظیفه می کرد و من و جرت هم خیلی دوستش داشتیم چون گاهی برای ما لیمونات می آورد. رئیس تشکیلات حزب فریاد زد. به چی می ببخشید آقای رئیس تشکیلات حزب از مأموریت استالینگراد به این ور گاه حالت خنده به من دست میده که گمان میکنم یه جور شوک باشه <تصفيق> رئیس تشکیلات حزب درجه و یگانش را پرسید و یکی از آجودانها آن را روی کاغذ کوچکی یادداشت کرد یک هفته بعد نشریات آلمانی داستانهای مصورى از فعالیت های رئیس تشکیلات حزب کخ تحت عنوان رئیس تشکیلات حزب کخ اولین کارگر شهرستان خیش چاپ کردند زیر عکسم نوشته بود رئیس تشکیلات حزب روزی چند ساعت به حفر سنگر می پردازد. <تصفيق> از حق نباید گذشت که معدودی مقامات رسمی حزب هم بودند که مثل سایرین کار می‌کردند سر و صدای خط اول جبهه ادامه داشت تا دا اینکه یک روز اولین ملاقات کننده ما به شکل یک هواپیما از راه رسید ما تازه و گاری اسبی خود که پر از الوار و سوسیس و بطری های لیمونات بود برگشته بودیم و سرگرد مسئول بازرسی یگان های زرهی هم با ما بود. از گاری پریدیم پایین. بطری های لیمونات و سوسیس را بین افراد توضیح کردیم و خودمان هم یک لیمونات باز کردیم. ناگهان هواپیمایی در آسمان شرق دیده شد. از سر احتیاط که به هر حال از شجاعت بهتر است به درون سنگر هواپیما. که یک دوباله مدل قدیمی بود از بالای سرما گذشت. سرگرد گفت خودشه ایوانه منظورش این بود که هواپیما روسی است. هواپیما که به سوی بیشوفسبرگ می رفت زد و برگشت و آنقدر ارتفاعش را کم کرد که نزدیک بود به نوک درختان بخورد. در یک چشم هم زدن از بالای سرما گذشت. چرخی زد و دوباره برگشت. این برنامه چند بار تکرار شد و سرانجام با پرتاب چند بمب خاتمی یافت که خوشبختانه خیلی از ما فاصله داشت. این نمایش سبب تخریب کامل آبریزگاه شد و دو اردک و یک گاو را کشت. آنشب تکه های بزرگ استیک قسمت ما شد. هفته بعد پیکی از فرماندهی رسید و خبر بازگشت گروه ما را به خانه آورد. از شنیدن این خبر خوشحال نشدیم. آنجا رو دوست داشتیم و احساس راحتی می کردیم. اما وقتی ما را سوار بر کامیان به برسلاو می بردند، که اولین مرحله در راه رسیدن به خانه بود، با ذوق و شب به نرمی تشکهای پرمان میاندیشیدیم. بیخبر از اینکه که در پومرانیا و پروس شرقی برای خواب راحت شانس بیشتری داشتیم. خانه ما در اثر بمباران مداوم ویران شده بود. به علت خرابی شبکه راه آهن آلمان، مسافرت ما به مونیخ بیش از یک هفته طول کشید. وقتی به آنجا رسیدیم، بسیاری از ساختمان ها ویران شده بود. با وحشت از اینکه خانه ما هم خراب شده، به طرف خانه دویدم. تا آن موقع درباره‌ی بمباران مونیخ نه مطلبی خوانده بودیم و نه چیزی شنیده بودیم. این هم یکی از روش‌های معمول مطبوعات گابرز بود. در بسیاری موارد حتی اخبار حمله های هوایی را منتشر نمیکردند و یا سرسری از کنار آن می‌گذشتند. خدا را شکر خانه سر جایش بود و مادرم زنده و سلامت با چشم اشکبار به استقبالم آمد بعد از شام نامه ای را که مهر رسمی بزرگی داشت نشانم داد در امتحان قبول شدی؟ پرسیدم چه امتحانی؟ مدرسی آدال فیدلر و ظرف سه هفته بعد اونجه باشی کجا؟ در فریلاسینگ؟ نه میخوان شماها را به وگل ساین بفرستند به محض اینکه فهمیدم میخوان تو را به وگلسانگ بفرستند به سراغ مقامات بالا رفتم اما مثل همیشه نتیجه نگرفتم فریلاسین مدرسه مخصوص اهالی باواریا بود ولی در هر حال قرار بود مرا به مدرسه وگرسانگ که بخشی از مدرسه آدولف هیتلر را در خود جای داده بود بفرستند این مدرسه در منطقه بین پروام و کوبلنس در وسط آیفل واقع شده بود از دورنمای آینده چندان یک نخوردم. شاید اگر این خبر چند روز پس از بازگشت به زندگی عادی می رسید اثر متفاوتی داشت اما در شرایطی که تازه از گرد راه رسیده بودم و دلم میخواست مدتی پیش مادرم بمانم خبر خوشایندی نبود میدانستم که مادرم تا سرحد جنون نگران است نه فقط به خاطر بمباران ها، بلکه به این دلیل که حجوم نیروهای دشمن به شدت رو به افزایش بود برای بسیاری از مردم مثل روز روشن بود که متفقین به زودی از مرزهای غربی آلمان. خاوند گذشت. به هر حال برای رفتن آماده شدم. روز قبل از حرکت مادرم گفت: پسرم اگه انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها به کوههای ایفل رسیدند تو همونجا که هستی بمون. اگه بیاین احتمالا تو را اسیر می‌کنن و به بازداشتگاه کودکان می‌فرستند و به هر حال زنده میمانی خودت رو به خطر ننداز و به مزخرفاتی که معلم‌هاتون میگن بوش نده. وقتی تو معرض خطر قرار میگیری فقط دعا بخون. خداوند همیشه کمکمون کرده. صبح روز بعد خانه را ترک کردم. سفر ما چهار روز طول کشید و یادم هست که بیش از مسافرت‌های معمولی توقف داشتیم. معمولاً ترن قبل از رسیدن به شهرهای بزرگی مثل اشتودگارد چند ساعتی توقف می‌کرد چون غالباً منطقه بمباران شده بود و خط آهن باید تعمیر می‌شد. به این ترتیب قطار نسبتاً خالی بود قالب مسافران سربازانی بودند که به جپه غرب منتقل شده بودند یا از مرخصی برمیگشتند همه به طرف غرب می رفتیم و ناگزیر باید کنترل های بیشتری را از طرف پلیس شهری پلیس راه آهن دژبان ها و مأمورین اس است تحمل کردم. بهترین کار این بود که برگ معموریت هم دم دست باشد چون به هر شهری که می رسیدیم پلیس برای سرکشی وارد قطار می شدند. بعضی از آنها نسبتاً معدب بودند اما اس, اس ها و دشبانها ها طوری رفتار میکردند که انگار هر سربازی که در قطار است یک فراری است پرو ام هم مثل شهرهای شرقی الونشتان و بیشوفسبورگ تغییر و داده بود هویت اصلی شهر از بین رفته و به شکل یک پادگان نظامی درآمده بود جایی که سابقاً تابلو راهنمایی با اسامی درانگیز قرار داشت تابلوهای جدیدی گذاشته بودند که قرارگاه‌های مختلف فرماندهی را نشان میداد. طبق مأمول به فرماندهی ایستگاه مراجعه کردم و پرسیدم که چگونه به وگل سانگ بروم. ظاهراً همه از یک قماش بودند. سرمن داد کشید که هیچ نو وسیله نقلیه‌ای برای بچه‌ها نداریم، حتی اگر جزو سازمان جوانان هیتلری باشند. دوتا چمدانم را برداشتم و بی هدف در خیابانها به راه افتادم. وارد کافه محقری شدم و یک فنجان قهوه سفارش دادم. از گفتگوی دو مرد ما که در میز پهلوی من نشسته بودند، اینطور فهمیدم که قرار است ظرف چند هفته آینده شهر تخلیه شود و بعضی از مردم هم دارند پیشا پیش از شهر می روند. از کافه بیرون آمدم. خیابان ها از خودروهای نظامی و پیاد هم باشته از سروازانی بود که سر و صورتشان بان پیچی شده بود. مدرسه ها به بیمارستان هایی تبدیل شده بود که در جلوی هر کدام تویلی طویلی از آمبولانس ها که مجروحان جنگ را حمل میکردند در رفته آمد بودند. جلوی ساختمان بزرگی که احتمالا ساختمان قبلی حزب بود، تابلوی بزرگی به چشم می‌خورد. مرکز ارتباطات SS فکر کردم خوب است به داخل ساختمان بروم. شاید آنها بتوانند کمکم کنند. در این فکر بودم که یک افسر SS از ساختمان بیرون آمد. پرسیدم آیا می تواند برای رفتن به محل ماموریت کمکم کند؟ بسیار خوب پسر، بپر توی ماشین. قد متوسطی داشت، میان سال بود و سلیبی از طلا به یقه لباسش آویخته بود. شاید فهمیده بود که چقدر خستم چون بلافاصله چمدانهایم را بلند کرد و توی ماشین گذاشت. با مکافات از ترافیک هر مرج شهر گذشتیم. پس از خروج از محدوده شهر، به راه دیگری پیچیدیم. در واقع اطلاق کلمه خیابان به آن اقررا آمیز بود شاید روزگاری خیابان بوده اما در آن لحظه با شیارهای عمیقی که در آن دیده میشد بیشتر به یک زمین شخم زده می مند. تا یک جاده افسر پرسید؟ آیا در وگرسانگ منتظرت هستند؟ جواب دادم گمان می کنم. چند سال داری؟ سن و سالم را به او گفتم کوچولو، بهتر برگردی خونه، اینجا برای تو مناسب نیست. در حال حاضر دی زیادی اونجا هستم. و ظرف چند هفته آینده این منطقه از جهنم هم بدتر خواهد شد. گفتم: من کوچولو نیستم. زد زیر خنده. چی باعث شده که فکر کنی دیگه کوچولو نیستی؟ وقتی من به سن و سالت ها بودم، دست چپ و راستم را تشخیص نمیدادم. من بعضی تجربیاتم را به عنوان کمک خادمه یزده هوایی برایش گفتم. چه ماغتی؟ من در کونیکسبرگ پسری و سال تو دارم و عبدان مایل نیستم اینجور جاها پیداش بشه. اما هر یک از ما باید به سهم خودمون برای رسیدن به پیروزی تلاش کنیم. او دوباره زد زیر خنده اما این بار حالتی عصبی داشت. تو یه حالوی کوچولو هستی؟ اگه زور میرسید اون کل گنده های حزبی را که این چرندیاتو رو توی مخ شماها فرو کردند و خودشون با کفل های چاق و گنده راحت و بیخیال پشت میزنشستند و بی خیال خودشون از وطن دفاع میکنند از درخت آویزون میکردم چرا فکر نمیکنین پیروزی با ما خواهد بود؟ یه سال دیگه میفهمی؟ هر چند. یک سال هم طول نمیکشه منظورتون چیه؟ صلاح معجزه آسایی داریم و با اون حتما به پیروزی خواهیم رسید؟ به همه خیال باش، به اخر خواهیم دید پیروزی نهایی نصیب چه کسی می شود از میان جنگل های آیفل که دلتنگ کننده و آرام به نظر می رسید می اما وقتی چشم هایم به نور مختصری که بوته های زیر درختان را مشخص می کرد آدت کرد توانستم تانک ها، سلاح ها و کامیون هایی را که روی آنها تورهای استتار کشیده بودند ببینم در آن دور و حوالی جنبندهی به چشم نمی خور. در این مورد از او سوال کردم. در جوابم گفت: "قرار نیست که تو این چیزها رو ببینی، اما حالا که دیدی، بگو ببینم اگه تمام این تجهیزات در داخل شهر بود، به نظر تو چه اتفاقی ممکن بود بیفته؟" طبیعتاً هواپیماهای دشمن سر می‌رسیدند و در یک آن همه رو منفجر می‌کردند. پرسیدم: "پس هواپیماهای جنگنده‌ای ما چیکارند؟" "از بنزین خبری نیست. هواپیمای جدیدی ساخته شده به نام توربوجت." که مثل بر خرکت میکنه اما حیف که فقط چندتایی از اونها داریم جده های را به سوی مقصد خود طی کردیم و از مهمات را پشت سر میگذاشتیم. بعد از مدتی رو به من کرد و گفت به زودی به وگل میرسیم. گوش کن فرزند حتما مادرت گفته که هر کودکی یک فرشته نگهبان داره بله اما این حرف بچه گوزنکه نه اینطور نیست، اما بدون شک فرشتگان هم این جهنم وحشتناک رو تا خاتمه جنگ ترک کردند. <تصفيق> به همین دلیل که میخوام به تو کمک کنم. اگه به هر نوع مشکلی برخورد کردی، اگه خواستی به خونه و زندگیت برگردی، یه نوکپا بیا به مرکز ارتباطات اس اس در پرو ام و سراغ اشتورن فورر گریم رو بگیر. اون شخص منم. مطمئن باش که هر کاری از دستم بر بیاد برات میکنم. بعد مثل که فکری به ذهنش رسیده باشد پرسید: راستی پدرت کجاست؟ پدرم قبل از جنگ مرد اون باستان شناس بود و برای حفاری به هندوستان رفته بود و همونجا کشته شد خیلی جالبه خواهر یا برادری داری؟ یه برادر بزرگ دارم اما در روسیه است. اینجا فقط من هستم و مادرم واقعا مادر شجاعی داری؟ البته مادرم اجازه نمیداد بیام اما بالاخره مجبور شد چه دور و زمانه یه که حتی مادرها هم اختیار بچه خودشونو ندارن؟ حرفای او تا حدی مرا رو آشفته کرد، چون عقاید اوهی شباهتی به یک افسر اس اس نداشت. در آن لحظه پای تپه مرتفعی بودیم که از آنجا برج بلندی دیده میشد. پرسیدم، این چه برجی است؟ وگرسانگون بالاست. چند لحظه بعد، نگهبانی جلوی ما رو گرفت. افسر، کارت شناساییاش را نشان داد. از خیابان وسیعی گذاشتیم و مقابل ساختمان عظیمی که معماری آن مثل سایر ساختمان‌های زمان هیتلر خشک و بیروح بود ایستادیم. همینجاست. من تو رو پیش شخص مسئول میبرم. چمدانم را پایین گذاشت. پس از عبور از در اصلی وارد محوطه وسیعی شدیم و از آنجا به سالن بزرگی رفتیم. عظمت این ساختمان پیچیده به قدری مرا به وحشت انداخت. که به کلی اعتماد به نفسم را از دست دادم. پسری که یکی دو سال از من بزرگتر بود، به ما خوش آمد گفت و ما را به اتاق انتظار هدایت کرد. ولی به جای انتظار ضربه‌ای به در اتاق مجاور نواخت و در حالی که من عقب ایستاده بودم، یک راست وارد آن اتاق شد. من مدارکم را آماده کردم که وقتی صدایم کردند، فوراً آنها را نشان دهم. بعد از مدتی اشتون فورر در باز شد. اشترنفورر در آستانهی در ایستاد و مرا به داخل اتاق برد. روبروی من شخص میان سالی در اونیفورم قهفهی رنگ با عینکی که در دست راستش گرفته بود مقابل تابلوی تمام قدی از هیتلر که عقابی به اندازه یک عقاب واقعی و یک سلیب آهنی در بالای آن نقاشی شده بود ایستاده بود ایشان آقای کلاسنر مدیر این مؤسسه هستند من گفتم هایل هیتلر اسم چیه پسرم؟ هانس یاخین وولفگان کخ فرمانده سابق جوخه فاین هشت سازمان جوانان نیروی هوایی هیتلری در مونیخ، قربان. که <تصفيق> شما فرمانده جوخه بودید. چه جالب. اما برگردیم به بر اصل مطلب. به ما خبر ندادند که شما میایید و سریعتر بگویم، ظرفیت مدرسه تکمیل است. با این همه مدارک بده ببینم. پاچت بزرگی را که مدارک در آن بود به دستش دادم. در حالی که چند بار با صدای بلند سینه‌اش را صاف می کرد آنها را برانداز کرد و دوباره آنها را روی میزش گذاشت بسیار خوب حالا که این همه راه را از مونیخ آمدهای میتونی اینجا بمونی گرچه خاطر شرایط کنونی برنامه آموزشی ما چندان منظم نیست البته زیاد نگران نباش به محض اینکه ارتش ما وزن را به حال عادی برگرداند ما هم به روال طبیعی خود برمیگردیم و تلاش ما را میگیریم حتما خود شما هم این موضوع را درک خواهید کرد و شما در جنگ شرکت داشته اید کی مبهوت پرسیدم منظورتون رو نمیفهمم هر اشتارن فورر گفتن که شما جزو آتشبار ضد هوایی بودید حالا منظورتون رو فهمیدم قربان من دیدبان یکی از آتشبارها بودم آیا در آن مدت حمله ای هم صورت گرفت یک بار قربان و حمله ای نسبتا سنگینی بود تو پسر شجاعی هستی درست همانطور که پیشفا انتظار داره پیشفا و, و سرزمین رایش کبیر به ما نیاز داره و اینطور ادامه داد بنابراین ما باید نهایت سعی خودمونو بکنیم امیدوارم متوجه باشی که برای پسر آلمانی چه افتخار بزرگیه که در یکی از مدارس هیتلری پذیرفته شه اگه خوب درس بخونی و به دستورات عمل کنی میتونی به مردم آلمان خدمت کنی قول میدم که نهایت سعی خودمو بکنم قربان امیدوارم. دکمه را رو که روی میزش بود فشار داد و جوانکی که اونیفورم قهوهی به تنداشت وارد شد. اینو، این پسر تازه اومده. اونو به بلوک یک ببر و در یکی از اتاقا براش جایی و پا کن. سالن غذاخوری هم نشونش بده. بعد از صرف غذا میتونه بخوابه. فردا صبح هم از انبار یک دست لباس براش بگیر و بعد بفرستش پیش من. به طرف من برگشت. تو اکوچه کوچکی از یک جامعهی بزرگ هستی. باید یاد بگیری که چطور در این جامعه زندگی کنی. طبعا در قبلی تو در اینجا اعتباری نداره. دوباره باید از صفر شروع کنی. یادت باشه که راه پیشرفت تو به مراتب دشوارتر از دفعه قبل خواهد بود. در حالی که به آن جوانک اشاره می کرد گفت: این آقا فرمانده جوخه و اسمش هینو شالکوفه. چند روزی با تو خواهد بود. به چهرهی بیروح و گوسنوار او نگاه کردم و نتوانستم تصمیم بگیرم که او را دوست بدارم یا نه. در حضور آقای کلاسنر رفتار بسیار توهین‌آمیزی داشت که به من برخورد. دوباره از صحنه حیات گذشتیم و وارد قسمت دیگری از ساختمان شدیم. شارکوف در بردن وسایل به من کمک نکرد و به همین خاطر بعد از بالا رفتن از سه طبقه حسابی از نفس افتادم. ساعت حدود نه شب را نشان می‌داد. ساختمان با راهروهای راه طولانی خود حالت غریبی داشت به طوری که پشباک صدای قدم های خود را می شنیدیم جلو یکی از درهای متعددی که در آنجا بود ایستادیم. این اتاق جوخه اقابه از این به بعد با اونها زندگی خواهی کرد چم دوناتو اینجا بذار تا به اتفاق به سالان غذاخوری بریم اگه بعدن خواستی سر و صورت تو صفا بدی همه اونجاست سمت راست قصد داشتم به مسجد رسیدن حمام کنم اما به قدری از جو نه آنجا جا خورده بودم که نتوانستم حرفی بزنم وسایل را در اتاق گذاشتم و نگاهی به اطراف انداختم چهار تخت دو طبقه در اتاق بود یکی از تختها نزدیک پنجره‌ای که شیشه‌های آن را مات کرده بودند قرار داشت و تخت بالای آن خالی بود به نظر تخت راحتی رسید و در مجموع نشان از سادگی داشت هینو مرا به اتاق غذاخوری برد که سالن بزرگی بود و با آرم‌های متداول رایش سوم تزئین شده بود. غذا ساده ولی کیفیت آن خوب بود. بعد از حمام به رخت خواب رفتم. ساعت ششانیم صبح روز بعد بیدار باش دادند. در واقع در دستشویی بود که خودم را به های آینده‌ام معرفی کردم. آنها جمع شادی بودند که از نقاط مختلف کشور آمده بودند. سرجوخه پسر چهارده ساله‌ای بود از اهالی برسلاف و به نام ارنست دزر پیش از صرف صبحانه دو کیلومتر در جنگل دویدیم بعد از صبحانه هینو دوباره آمد و از انیفرم برای من آورد یکی برای مراسم رژه یکی برای استفاده در مرخصی و یکی برای آموزش نظامی ساعت هشت نیم صبح به دیدن آقای کلاسنر رفتم از من پرسید آیا از آنجا خوشم آمده و بعد به موضوعات دیگر پرداخت به اتفاق هینو به بلوک یک برگشتیم. او مرا به کلاسی برد که در آنجا انگلیسی تدریس میشد. مرا به شاگردان کلاس معرفی کرد. روی سندلیم نشستم و در کمال تعجب دیدم که کلاس فقط از پانزده شاگرد تشکیل شده. در مونیخ به علت کم بود مدارس و ساختمانهای مناسب ما را در کلاسهای شست نفری میشباندند. به جای نیمکت کهنه ی مدرسه به هر کدام از شاگردان یک صندلی راحت دست داده بودند. من نفر شانزدهام کلاس شدم. به زودی به جوانجا عادت کردم. ساعت درس به طور معمول از هشت صبح تا چهار بعد از ظهر بود که یک ساعت آن را برای ناهار اختصاص داده بودند. از چهار تا چهار و نیم استراحت داشتیم که باید روی تخت هایمان دراز میکشیدیم. چهار و نیم تا شش نیم وقت مطالعه و انجام تکالیف درسی بود. از و نیم تا هفت یک بار دیگر میدویدیم و بعد از آن شام میخوردیم و تا ساعت هشت و نیم که وقت خوابیدن بود آزاد بودیم. ساعت نه چراخ خاموش می شد اتاق ها مجهز به بلنگوهایی بودند که در ساعات مختلف روز اخبار و موزیک پخش می کردند مدرسه به طرز عالی از تمام امکانات مدرن که این مدرسه آرزوی داشتنش را داشت برخوردار بود روش آموزش این مدرسه با روش های متعارف به کلی تفاوت داشت در حالی که در مدرسه دیگر درس را خواه ناخواه به خورد ما در این مدرسه برنامه آموزشی با فراغت کامل اجرا شد. برای بحث و گفتگو جای ویژهی در نظر گرفته شده بود. در حقیقت ما تشویق می شدیم که پرسش های خود را مطرح کنیم. پرسشهایی که یک شهروند معمولی آلمانی فقط در تنهایی به آن فکر می کرد. طبیعتاً ما از این امتیاز بهرهبرداری زیادی می کردیم. برای مثال، یک بار من به موضوعی گوش می کردم که از آگاهی های من بالاتر بود. موضوع اهرا مربوط به سیاست خارجی آلمان و انگلیس بود یکی از شاگردان در نقش وزیر خارجه آلمان و دیگری در نقش وزیر خارجه انگلیس در مورد طرز فکر و برخورد دو کشور قبل از چنگ جهانی اول با یکدیگر بحث میکردند پسری که نقش وزیر خارجه انگلیس را بازی میکرد چونان نقش خود را زیرکانه اجرا کرد که طرف مقابل او ناگزیر استدلالش را پذیرفت انزباط سخت و دقیقی روحیه ی رقابت آمیز حاکم بین جوخه های مختلف سبب میشد شد که همه سعی و کوشش کنند. احترام آمیخته به ترس که معمولا نسبت به معلم ها داشتن به کلی برطرف شده بود. برنامه آموزشی ما شامل مواد درسی دبیرستان با تأکید خاصی بر تاریخ آلمان، ریاضیات، که حتی کوشش های این مدرسه هم برای تفهیم آن به من به شکست انجامید، زبان، نجاتشناسی و ورزش بود. زمانی که به ورزش اختصاص داده شده بود، عملاً صرف آموزش رزم پیاده میشد. برای مثال، بهترین طرز استفاده از زمین در مقابل هر نوع حمله، مقابله با حمله های ایزایی از سوی مواضع ساختگی دشمن، دیدبانی و ساختن پناهگاه و تمرین های مشابه آن به ما آموزش داده میشد. افسران نیروهای سگان بارها به دیدار ما می آمدند و درباره موضوعات گوناگون سخنرانی نمیکردند که بیشتر آن تبلیغات پیش پا افتاده بود. اما هنوز سخنرانی یکی از افسران اس اس سوئدی را که به خاطر فعالیت هایی که ظاهران به نام تشکیل جبهه متحد سوسیالیسم اروپایی ولی در واقع برای احیای نازیسم کرده بود شهرت داشت، بیاد یاد او در اوائل سپتامبر 1944 خطاب به ما چنین گفت. آقایان، در چشمانداز تاریخ این جنگ نبردی از یک سلسله جنگ هاست. جنگ جهانی اول آن بود و این جنگ، نه نتیجه آن بلکه ادامه آن است. در جنگ اول شکست خوردیم و نتیجه جنگ دوم هم هرچه باشد مهم نیست. مهم آن است که ما را به هدفمان نزدیک تر می کند. ها و آمریکایی ها ممکن است حالا مخالف ما باشند. اما سالها بعد آنها هم از ما جانبداری خواهند کرد. اینجاست که نقش شما آشکار می شود. آلمان و همراه آن اروپا در دستهای شماست. فقط آلمانی ها قدرت نامحدود تجدید حیات معنوی را دارند. و وظیفه هاست که اروپا را بر حسب اصولی که به شما می‌آموزیم بسازند تنها یک جنگ دیگر خواهد بود که در این جنگ اروپا به صورت یک قدرت نظامی شرکت کند و حرف آخر را بزند با وجود که این پیشگویی رنگی از نازیسم داشت رویدادهای بعدی سبب شد که این پیشگویی را بارها و بارها به یاد بیاورم